بسم الله الرحمن الرحیم خداونده به اندازه مهربان نهایت باره الفلام راه قرآن است که آن را به تو نازل کردیم تا مردم را به اذن فروردگارشان از تاریکی ها و روشنایی بیرون آری براه صاحب قدرت منی و ستوده خدایی که آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست و وای بر کافران از مجازات شدید آنانی که زندگی دنیا را بر آخرت بر می گزینند و مردم را از راه خدا باز می دارند و در آن وارونگی می جویند یعنی آن را نادرست جلوه می دهند ایشان در گمراهی اند. و ما هیچ پیانبری را نفرستادیم مگر به زبان قوم او تا حقیقت را برایشان روشن سازد پس خدا هر کی را خواهد گمراه می کند و هر کی را خواهد رهیاب یاب می سازد و اوست صاحب قدرت منی و با حکمت و بیگمان موسی را با آیات خود فرستادیم و به او هدایت دادیم که قومت را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آورد و به ایشان رودهای خدا را یادآور شد بیگمان در این نشانه است برای هر سبر کننده شکر بزن و به آور وقت را که موسی و قوم خود گفت نعمت را که خدا به شما کرده به یاد آرید و وقتی که شما را از فرانیان نجات داد و شما های شدیدی می پسران شما را می کشتند و زنان شما را زنده می گذاشتند و در آن برای شما از طرف پروردگار شما آزمایش بزرگی بود و یاد دارید وقتی را که پروردگار شما اعلام داشت اگر شکر کنید بیگمان نعمت خود را بر شما می و اگر ناسپاسی کنید بدون شک عذاب من شدید است. موسیٰ گفت اگر شما و هر کسی که در روی زمین است همه ناسفاسی کنید باز هم بگمان خداوند بی و و ستوده است آیا با شما خبر پیشینیان شما نرسیده است؟ خبر قوم نوح عاد و سمود و کسانی که بعد از ایشان بودن؟ جز خدا کسی دیگر احوال ایشان را دا نمی داند. پایانبرانشان با نشانه های روشن نزدشان آمدند. پس ایشان دست های خود را به های خود گذاشتند و گفتند بیگمان ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید ایمان نداریم و بگمان به آنچه ما را به سوی آن فرانی خانید در شک و شده می باشید پایانبرانشان گفتند آیا در خدا شک است؟ خدای آفریدگار آسمان ها و زمین او که شما را می تا گناهان شما را بیاه و تا موعد معین شما را مرلت دهد گفتند شما نیستید مگر بشر همانند ما می ما را از آن چه فدران ما پرستش می کردند باز دارید پس دلیل روشنی به ما بیاورید بایانبرانشان برایشان گفتند درست است که ما نیستیم مگر بشری همانند شما ولیکن خدا بر هر کسی از بندگان خود که بخواهد منت میگذارد و به ما ممکن نیست که به شما حجت یعنی معجزه بیاوریم جز به اجازه خدا و مؤمنان باید بر خدا توکل کند و ما را چی شده است که بر خدا توکل نکنیم واقعا او ما را به راه خیر و سعادت هدایت نموده است و البته ما در برابر اذیتی که به ما میرسانید صبر می کنیم و توکل کنندگان باید برمودا توکل کنند کافران به پیامبران خود گفتند یقینا شما را از زمین خیش بیرون می کنیم یا باید به آین ما برگردیم پس پروردگارشان بر ایشان وحی کرد بیگمان ستمگاران را حلاک کرده هستیم و بیگمان شما را بعد از ایشان در زمین جاگوزین ساختنی هستید این موحبت برای کسی است که از مقام من بترسد و از وعید یعنی عذاب من بترسد و ایشان خواهان فیصله شدند و طلب پیروزی کردند و هر گردن کش ناامید شد به دنبال او دوزخ است و برایش از زرد آب متعفن نوشانیده می جره جره آن را به زحمت سر می کشد و نزدیک نیست که آن را از گلو فرو برد مرگ از هر سو به سراغش می آید ولی او نمی میرد و به دنبال او عذاب شدید است مثال اعمال کسانی که از پروردگار خود منکر شدند مانند خاکستری است که بر آن در روز توفانی بادی وزیده باشد ایشان بر هیچ چیزی از آنچه انجام داده بودند دسترس ندارد. این از تومان و گمراهی دور آیا ندیدی که خداوند واقع اصمارها و زمین را به حق آفرید اگر بخواهد شما را از بین میبرد و مخلوق جدیدی را به میان می آورد و این برای خداوند دشوار نیست فهمه ایشان به حضور خدا حاضر می شوند پس ضعیفان و متکبران میگوین بگمان ما پیرو شما بودیم پس آیا از ما چیزی از عذاب خدا را دفع کننده هستید؟ آنها میگوین اگر خدا ما را هدایت میکرد بگمان ما نیز شما را رهیاب میگردانیدیم او کنون برای ما است خواه بسدی کنیم یا شکیبایی ورزیم برای ما نجاتی نیست و چون کار تمام شود شیطان میگوید بگمان خداوند شما را وعده داد وعده ها و من با شما وعده دادم و با شما تخلف ورزیدم و من بر شما تسلتی نداشتم جز اینکه شما را دعوت کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید پس مرا ملامت نکنید و خیشتن را ملامت کنید من فریادرس شما نیستم و نه هم شما فریادرس من هستید واکن از اینکه پیش از این مرا با خدا ان باز گرفتید بیزار هستم بیگمان برای ستم گاران عذاب بسیار و آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند و باغهایی داخل می شوند که در زیر درختان آن رودبارها جریان دارد جودانا با حکم پروردگار خیش در آنجا سر می برند خوش آمدیدشان در آنجا سلام است آیا ندیدی چیگونه خداون کلمه پاکیزه را همچون درخت پاکیزه مثال زند گریشه آن ثابت و شاخ آن در آسمان است میوه خود را در هر فصل با حکم پروردگار خود میدهد و خداوند با مردم مثالهایی میزند تا باشد که ایشان پنگ و مثال کلیمه ناپاکیزه مانند درخت ناپاکیزه است ریشه های آن از روی زمین برکنده شده صبات ندارد خداوند مسلمانان را با سخن استوار در زندگی دنیا و در آخرت ثابت قتم میسازد و خداوند ستمگاران را گمراه میگرداند و خداوند هر آنچه بخواهد انجام میدهد. آیا به سوی کسانی ندیدی که نعمت خدا را به ناسپاسی تبدیل کردند و قوم خیش را به منزل تباهی جاگوزین ساختند، دوزخ در آنجا میسوزند و چی بد است؟ و با خدا هم تایانی قرار دادن تا مردم را از راه او گمراه سازند بگو چند روزی از لذایز این دنیا بهرور شوید بیگمان راه شما به سوی آتش یعنی دوزخ است به بندگان مسلمان من بگو نماز را به تمام و کمال ادا کنند و از آنچه به آنها رو زی دادیم به گونه پنهان و آشکارا نفقه نمایند پیش از اینکه روزی روز فرار است که ندر آن خرید و فروشی است و نه هم دوستیه خداوند است که آسمانها و زمین را آفرید و آب را از آسمان فرود آورد و با وسیله آن میوه ها را به شما به حیث روزی بر و برای شما کشتی ها را رام ساخت تا با حکم او در بحر حرکت کنند و برای شما جوی را رام ساخت و برای شما آفتاب و ماه را با دستور منظم رام ساخت و برای شما شب و روز را رام گردانید و به شما از هرچی خواستید داد و اگر نعمتهای خدا را بشمارید آن را شمار کردن نمی توانید انسان بسیار بیدادگر و خیلی ناسپاس است و بیادار وقتی را که ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را محل امن گردان و من و اولاد مرا از پرستش بوتان دور نگهدار. ای پروردگار من، این پتان واقعا بسیاری از مردم را گمراه ساختند پس هر کس از من پیروی کند، واقعا او از من است و هر که مرا نافرمانی کند، پس حقا که تو آمر زنده و مهربان هستی ای پروردگار ما، بگمان من بعضی از اولاد خود را در وی، به آب و گیاهی در پهلوی خانه که حرم توست جاگزین ساختم، ای پروردگار ما تا نماز را به تمام و کمال برپا دارند پس دل گروهی از مردم را به ایشان مایل گردان و از میوهها ایشان را ده تا باشد که سپاس گذار شود ای پروردگار ما حقا که تو آنچه را که پنهان میداریم و انچی را آشکار میداریم میدانی و چیزی در زمین و آسمان از خدا پنهان نیست ستایش خدای را که به من با وجود کبر سن اسماعیل و اسحاق را اعطا کرد بیگمان پروردگار من هم اوست شنونده دعا ای پروردگار من مرا بر پادارندۀ نماز بگردان و از اولاد من نیست ای پروردگار ما دعای مرا قبول فرما ای پروردگار ما مرا و نیز مادر و پدر مرا و همه مسلمانان را در روزی که حساب برپا می شود بیامرس خداوند را از آن چیستم گاران می کنند غافل مپندار بگمان ایشان را برای روزی مهلت می دهد که در آن چشمها از خرط دهشت خیره می شود شتابان سر خود را به سوی آسمان بلند می کنند از شدت اندوه و ناآرامی پلک های چشم از حرکت می ماند و دل‌هایشان از همه امیدها خالیست و مردم را از روزی بترسان که عذاب به سراغیشان می پس ظالمان می گویند ای پروردگار ما ما را اگرچه برای مدت کوتاهی هم باشد محلت دی تا دعوت را قبول کنیم و پیانبران را پیروی نماییم، در این حال به جواب ایشان گفته می شود مگر پیش از این سوگند نمی خوردید که شما را زوالی نیست؟ و در رحایش گاه جا گزین شدید که برخیشتن ستم کردند و به شما آشکار شد که چیگونه با ایشان رفتار کردیم و برای شما از سرگذشت پیشینیان مثال ها زدیم ولی پند نگیفتید واقعا ایشان نهایت دسیسه های خود را کار بردند و همه دسیسه هایشان نزد خدا آشکار هرچند دسیسه هایشان کوه ها را از جا بر پس خدا را متخلف وعدهش با پیانبرانش مپندار حقاق خداون صاحب قدرت منی و صاحب انتقام است روزی که این زمین به زمین دیگر مبدل شود و نیز آسمان ها و مردم به حضور خدا یگانه بسیار غالب ظاهر شود در آن روز گناهکاران را در زنجیرها به هم بسته می لباسشان از قطران است و شان را آتش می پوشاند تا خداوند هر کسی را مطابق به آنچه انجام داده جذا بدهد بیگمان خداوند در محاسبه سریع است این قرآن قیام است برای مردم تا به آن تسانیده شوند و تا بدانند که بیگمان او تعالی معبود یکتاست و تا خیرت پند گیرند